3/18 ما از چیزهایی که این غیر منصوبه اما که المشتقل و انعول عامل است المشتعل اسم مفعول ال 1 میلیون اسم فاعل اسم یعنی اگر بخوایم ایزالت المشتقل و انعول عامل به این شکل بگیم همون ال میشه المشتفر همون میشه المشتفر همون میشه همین هشتو قیل انا آمین یعنی چیزی که مشغول کرده شده از او آمین یعنی آمین از او مقفول شده قفلت گرفته شده شده یعنی آمین از او قفول شده یعنی آمل ما در اینجا مشغول شده از این اسم یعنی به یه چیز دیگری مشغول شده و از این اسم آفل شد علموشتق و آمی. مثالی بزنم خدمتتون تو ببینیم زیدن زیدن زرب دان تو یا زیدن ضرب تو عواب زیدن ضرب تو عواب الان زیدن اسمی است که مشمول شده از او طالب آمد که بوده زرمتون مشغول شده یعنی یه چیز دیگری اومده و برای اون نقش مفهولی بازی کرده اون به اون اونشه مشغول شده و دیگه نتونسته زید رو نست بده چون دوتا مفهول نمیدونه در مثال اول اونی که مشغولش کرده چیه؟ زمیر زمیر خود زید. در مثال دوم چیه؟ متعلق اسم محقبه متعلق اگه باشه گفتیم یعنی چی؟ یعنی اسمی که دارای زمیر یک اسم دیگر است. اون اسم رو نسبت به اسم اول که مرجع زمیره بهش میگن چی؟ متعلق یا سبب؟ طب پس چه باید کرد؟ در اینجا که زیدن رو منصور خوندیم مجبوریم به قول کتاب هدایی که خوندیم فعل مناسب یا فعل مشابه تقدیم بگیریم یعنی تو مثال اول زیدن زربتو دو بگیم زیدن رو کی نستده؟ تو مقدم در مثال دوبام زیدن تو عواهو دیگه نمیتونیم بگیم زربتو نستده چرا؟ دیدن ما زید رو نزدیم پدرش رو زدیم ولی وقتی زید رو زدیم پدرش رو نسبت به زید چه کردیم احانت کردیم رضا برای زید فعل مناسبه اهند رو آه. مناسبه اهند پا این کتاب نگاه کنیم هاشیه سی کتاب رو دیدیم هوا اسمو دیدید آقا؟ آ تو این دو تا مثال رو تطبیق کنید او یعنی با به اشتغال، المشتغل. این مشتقل اسمیه. تو مثال ما چی بود؟ اسم زید. زیدی است که بعده او عاملو. بعد از این زید چیه؟ عامل. تو هر دو مثال عامل بود. بود؟ ذرب. بعده او عاملو. پس بعد عامل میشه. این آمل هم متصرف رو یعنی چی؟ یعنی فیلش فیل جامد نباید باشه باید فیل متصرف باشه خب مثال زرب داره ناسب لزمیرهی این آمل باید ناسب زمیر اون اسم باشه تو مثال اول ناسب چی بود؟ زمیرش بود زرب تو کورو نصب داره گمهان مفهان او متعلقهی یا اگر ناسب زمیرش نباشه ناسب چی باشه؟ متعلقش باشه یعنی اسمی که همراه زمیر اون اسم متعلقه حالا نصب دهن لزمیره او متعلقهی به واسط او ها حالا با واسطه این کار رو بکنه مشبون شه بی واسطه یا با واسطه فرقی نمیکنه حالا مثلا یه دونه این مثال‌هایی که زدیم بی واسطه غیره ها حالا واسطه مثال میزنیم مثلا زیدن ضرار تو بهی زیدن تو الان به واسطه چی مشغول شده به واسطه حرف جن به واسطه حرف جرد. یا مثل زیدن زربت و امرن و اخاهو قرار برگردونید. الان مشغول شده ضرب تو اولا و به ساد به کی؟ به امرن. ولی به واسطه حرف عت مشغول به او هم بکی سلام. حالا به واسطه الوقی و یکون و زال کل عامل این شرط باب اشتغاله که تو کتاب هدایه هم و می باشد این عامل به به شکلی که لو فرق منزال کلمعمول و سلط علل اسم لنسبم چون جواب رو با به جوریه که لو من منزال معمول. اگر این معمولی که الان بهش مشغول شده نباشه خب. و سلط علل و مسلط چه بر اسم قبل چیکارش کارش میکنه؟ در نصب اونو با اونوان معمول ولی اگر ولی اگر این شرط رو نداشته باشه یعنی اگر نتونه در اسم ما قبل عمل کنه دیگه باب اشتغال دیگه باب اشتغال بالا اشتغال دیگه معنا تا این جای تعریف تعریف صحیحی است این رو تعریفشه حالا همین تعریفی که دیدید بالا ببینید ایشون چجوری تعریف می‌کنه میگه اذا و شتو قله آمدون زمانی که مشغول بشه یک عامل میگه عامل میگه نمیگه ف ممکنه اون عامل فعل باشه ممکنه اسم فایل باشه و باشه. باشه هرچی که بتونه در اسم ما قبل عمل کنه ولی عمل نکرده و مشغوله به زمیر یا متعلق باشه ازا اشتغل عامل ان اسم مقدمه خوب این قیدارو تو ذهنتون داشته باشه اسم هم باید حتما اون اسم که مخارده مشغول بشه ازش این عامل باید چی باشه مقدم باشه عن اسم مقدم مشغول شده باشه عامل از اسم مقدم به چه سبب به این سبب به نسب زمیری. به به اینکه نصب داده به ضمیر اون اسم مقدم مثالشو زدیم چی زیدن ظرف او متعلق یا نسب داده باشه به متعلق اون اسم مقصود یعنی اسمی که دارای ذمیر اون اسم مقصود باشه مثلا ابو بکر و لزال کل اسم خم سحالات اون شرط باب اشتغال که تو اون تعریفی که خوندم بود ایشون اینجا شیخ زک نگرده شرطش چی بود به اینکه اگر فارق بشود از این زمیر یا متعلق اون اسم مقدم رو چکارش کنه نصبش این رو دیگه شیخ زک نگرده و این تعریف این در عبارت لازم هم. کان نزال کل اسم خمس حالاته برای این اسم مقدم پنج حالت وجود داره. پنج شکل برای این اسم مقدم هست. یکیش واجب و نصب یعنی اسم مقدم واجب است که چی بشه؟ منصوب بشه خب معلومه وقتی هم منصوب میشه بوجودا نصبش به چیه؟ به عامل مقدری که این فعلونو تفسیل شد این آمل اینو پفزیدشون کانن زالکل اسم خمس و حالات یک فیجب و او به آمل مقدرین سمانده پس واجب است نصب دادن به آن اسم به. اون اونم به سبب آمل مقدرین به عامل مقدرین خب این عامل مقدر ما از کجا بفهمیم چیه؟ علم قیب که ندارین میگه به آمل مقدر یوفسره هو آمل مقدر که تفسیرش میکنه المشتقل یعنی این که الان چی شده مشکل حالا یا تفسیر میکنه این لفظ او رو یا تفسیر میکنه چی؟ مناسبش رو المشتقل کی کهی واجب از نسبش ازا تلا تلا رو معلومن تلی نوشته باید با علف بنویسه تلایت رو واویه ازا تلا مالایت روحو الا فیلون تلا یعنی وقع بعد ازا تلا یعنی ازا وقع بعد ازا وقع بعد لایطلوهو یعنی لایقه او بعدهو بعد او بعدهو الا فیلو حالا میشه معنی کرده. زمانی که تلا بعد ما وقع بعد ما زمانی که واقع شود اون اسم زمین داخل تلا میخوره به اسم زمانی که واقع شود اون اسم بعد از چیزی که واقع نمی شود بعد از او مگر فعل. یعنی اسم مقدم بعد از چیزی بیاد که حتما بعد از او چی میاد فیل میاد خب باید اینجا ما کار کنیم به اجبار منصوب بخونیم تا یه فیل تقدیر بگیریم و عبارت چی بشه فعل. الان مثال بزنیم کعدات تخصیص لو ک ادات شعر فرقی نمیکنه ادات تهذیذ عدات شعر ادات عرض ارزیاتتون رو خوندیم یعنی درخواست به نرمی تهذیذ یعنی درخواست به درستی و به سختی با اعتراض مثلا لا ان لا نگاه کنید نه هل لا زیدن اکرم کار داره توبیخ می بگیم حلا زیدن اکرام تهو چرا زید رو اکرام نکردیم چرا الان اگر ما زید رو منصوب نخانیم و مرفوع بخونیم بگیم زیدن مبتدا اکرام تهوچی فعل و فاعل و مفعول خبرش این غلط است چرا به دلیل اینکه بعد از حلا جمله چی میاد آید فعلیه می آید بعد از عدات تحزیز جمله فعلیه میآید نه جمله اسم. اسمیه پس اینجا مجبوریم بگیم حلا زیدن اکرمتهو خب علا اکرمتهو فعل و فاعل و مفعول تفسیر میکنه کنه یه اکرمتهی رو قبل از زید و اگر اکرمتایی قبل از زید باشه الله درسته جرا چون حلا بر سر جمله حالا الله نباشه این شرطیه باشه فرقی نمو چیزی است که نیاز دارد بعد از اون جمله فعیلیه بیاد. و که عداد شرط مثل عداد شرط نبا کنید نه بود ازا زیدن لغی با اکرم هو ازازیدن چرا نمیگی ازازیدل نغایتا ها به دلیل اینکه بعد از ازای شرطیه جمله فعلیه میاد نه جمله اسمی نزا میگیم ازا ازای شرطیه اضافه میشه به جمله شرطش و منسوب است به جزای شرطش چون جزای شرطشان هم جمعه اینشایی بوده را با فاهم خب لغایته چه میکنه؟ تفسیر میکنه یه لغایته ای رو قبل است زید و اضام اون موقع بر سر جمعه فیلی میدن خب موردی که واجب بود اسم مقدم رو نصف بدیم چه موردی بود؟ موردی که اسم مقدم بعد است چیزی بیاید؟ که بعد از اون چیز حتماً و حتماً فعل میاد و جمله اسمیه نمید. این مورده ورف اوهو عطف از به جای نسب اوهو یعنی و یجب و رفت و واجب از رفت بهش بدیم الان میتونیم حدس بزنیم که کجا واجب رفت هر کجا رفت بدیم میشه مقتدار تمام بعدش میشه خبر و جمله میشه جمله اسمیه بعد بگیم رفعش کجا واجبه جایی که ما نیازه به جمله اسمیه ده. و رفع هو به ابتدا رفع بدیم به اسم مقدم به وسیله ابتداییات که ازاد طلا باز واژه با طلا مَا لَا يَتْلُوهُ اسم یعنی مبتدهان مَا اسم منظور چیه؟ مبتدهان یعنی جمله اسمیه منظور مبتداست زمانی که تلا واقع شود اون اسم بعد ما بعد از چیزی که لا یقه و بعده اون لا مبتدهان واقع نمیشه بعد از اون مگر متداد و هیات واقعه رو شب مثل چی که ازاء الفجائیت، مثل ازای فجائیت، مشکلی میذودیم ازایی که دلالت بر ناگهانی می کنه. مثل خرج تو و ازاء اسدون بالباب یعنی از خونه اومدم بیرون پس ناگهان شیدی دم در قابیده. فازاء اسدون میگه اگر بعد از ازای فجاییه باشه اون اسم مقدم باید مرفوح بود تا بشون محتده و ما بعدش بشه خبر و جمعه اسمیه بعد از ازاییه بعد از ازای شرطیگه مثل ازای بالایی ازا زیدن لگه حتما باید فعل بیا، بعد از ازای فجاییه حتما و حتما باید اسم نه و خرچ تو فعزا زیدون یزره بو هو امرو و ازازیدون یزره بو هو امرو. الان درست یزره بو هو شده به هو مشکول شده به چی؟ به هو و دیگه نتونسته زید رو نصب بده ولی ولی چی؟ زید منصوب به فعل هم همینجا نیموشید چرا؟ بدلینه که اگه منصوب بشه به یه یزرگوی مقدر که این رو تفسیرش کنه بعد از ازای فجاییه چی واقع شده؟ فعل واقع شده و غلطه باید زید رو مرفو خوند و مبتدا یزرگوهو امرون رو فعل و مفعود و فائل رو جمله رو خبر این زید قرار ده و ها هم میشه رابط جمله خبر این یک او فاصله بینه و بین المشتغل ما له سر یا فاصله شود آه. فاصله انداختش بینه بین اسم مقدم و بین المشتغل و بین اون عامل مشغول شده چی فاصله بندازن مال له سر چیزی که دارای صدارت الان نگاه کنیم مثل این نه رو زیدون حل رعیته زیدون حل رعیته الان اگه حل نبود ما میدونستیم زید رو چی بخونیم منصوب بخونیم به یه رعیته مقدم ولی الان که حل هست دیگه امکان نداره چرا؟ چون حل دارای صدارته حل دارای صدارته و وقتی حل دارای صدارته اگر ما اون زمیر رو برداریم اگر زمیر رو برداریم آیا رعیت میتونه نصب بده اون موقع سید رو؟ اگر اون زمیر رو برداریم شرط باب اشتغال این بود که اگر زمیر برداشته بشه اون بتونه اسم ما قبل رو نصب بده آیا میتونه؟ نه چرا؟ چون ما بعد عداتی صدارت طلب بر ما قبلش عمل چیزی بر حال نمیتونه مقدم شه اگر زید معمول رعی بوده هیچ وقت نمیتونه بر هر چی بشه مقدم بشه چون هر صدارت دام اصلا شرط باب اشتغال در این مثال بگید نیست چرا؟ چون شرط باب اشتغال این بود که اگر زمین رو برداریم بتونه اون عامل در اسم ماغم عمل کنه و اینجا قادر نیست چرا قادر نیست؟ به دلیل اینکه اگه عمل کنه باید بگیم زید معمول رعیت است و مقدم شد و هیچ وقت معمول رعیت هست بر حل که استفهام هست و صدارت داره مقدم نمیشه خب بگید ما نمیگیم که عمل کنه در اسم ماغم عمل نکنه چون دیگه الان عمل کرده در زمیر عمل نکنه بلکه تفسیر کند یک رهیته مقدر رو قبل از زید. خودش که نمیخواد عمل کنه میخواد تفسیر کنه یه قاعده ای دارن تو باب اشتغال اینجا شیخ به اون ترز نکرده میگن مالای عمل مالای عمل و لایوفست سروشهی آن مالای عمل و لا يفسر شيئا یعنی چی یعنی چیزی که خودش قادر به عمل کردن نبوده تفسیر کننده ی چیزی هم نیست یعنی اگر خودش میتونست عمل کنه تفسیر هم میکنه حالا چون خودش نمیتونه عمل کنه پس تفسیر هم نمیکنه این قاعده باب اشتفال پس زید رو باید مرفو خون بشه زیدون مبتدا حل رعیتهو جمله انشایی بشه چی؟ خبرش گرد کنم از جمعه انشایی حل رعیتهو بشه؟ خبرش حالا حل نباشه این شرطیه بشه بازم سه در برقی نمیکنه چیزی که صدارت داشته میشه ایشون استفهان بسازده میتونست شرط بسازده این رعی تا بود مثلا فکر اگر اون قید اگر اون قیدی که تو تعریف بود تو تعریف آشیه کتاب که اگر زمین رو برداریم، به تواند در اسم ما عمل کنه اگر این قید رو در نظر بگیریم مواردی که واجب و رفعه هیچ کدومش بابه اشتغال به اصاب چون در اون مثال قبل هم اضای اگر ما زید رو اگر ما هوی یزربو رو برداریم اگر ما هوی رو برداریم آیا یزربو میتونه زید رو نصب بده؟ نه چرا؟ به دلیل این که اگه نصب بده چی مارده شده بعد از اضای؟ قادر به نصب دادن نیست. اگر اون قید قید باشد دیگه این قسم واجب و رفع جزء وابت اشتغال به حساب نمیاد چون تعریف باب اشتغال بر او صادق نیست. چون تعریف باب اشتغال اینه که اگر اون اسم عاملش فارق بشه یعنی زمیر نداشته باشه بتونه نصبش بده. در این جور موارد قادر در این دوتا مثال رو میبینید یکیشو هر نمیگذاره که نصب بده چون صدارتش از بین میره و یکیشو هم ازا اجازه نمیده چون چرا بعدش جمله فعلیه واقع میشه پس علایه ها این نتیجه میگیرید که اگر بعد از ازای فجاییه و مانند او که باید اعصیم واقع بشه باب اشتغال بیاد حتما باید مرفوح بود و اگر بعد از اسم ما چیزی بیاد که صدارت دارست مثل حل، استفحان، مثل این، عداد شرط در اینجا هم باید مرفو خون چرا؟ چون اگه منصوب خونید دیگه صدارت از بین صدارتی در کار میگیم خودش که نمیخواد عمل کنه بگید صدارت از بین میره میخواد تفسیر کنه جواب میدن مالای عمل، لای و فصل رو شیعات اونی که خودش نمیتونه عمل کنه تفسیر هم این هم ماله مورد رفت واجبه خب حالا یه جایی هست نصفش مستحف است. خب حالا دیگه شما فهمیدید که اگه ما منصوب بخونیم منصوب میشه به چی؟ به فعل مقدم و اگه منفور بخونیم منفور میشه به اتدایی منصوب بخونیم جمله جمله فعلی است مرفوع بخونیم جمله جمله این است نواله تا اینجا بده حالا میگه وی الترجح و نصب و یعنی چی یعنی یستر و مستحب است نسبش خوبه ترجیح دارد نسب دادنش یعنی جمله چه ازات حالا یعنی تلا یه یعنی چی؟ وقعه ابر ازا طلا مزان نده فعله مزان جمع مزنه مزنه یه چی؟ محلی که انسان زن و گمانش میگه زمانی که واقع شود بعد از چیزی که انسان گمانش به اونجا بیشتر چی میاد؟ فعل میاد بعضی از عداد هستن مثل همزه استفهام آه مثل همزه استفان همزه استفان اگر در کلام عرب بگردیم مثلا 90 درصد هشتاد درصد بعدش چی میاد؟ فیل میاد گه پونزده درصدی هم بعدش اسم میاد یعنی جمله اسمی میاد مددان خب حالا اگر یک موقع اسم مشتقل ما بعد از همزه واقع شد همزه استفان بهتر اینو حملش بکنیم به اون 90 درصده و منصوب بخونیم و جمعه فیلی یه بعدش بیا یا بهتر حملش بکنیم به اون 10 درصده بهتری که هم بشه به علم اغلب دیگه اون اغلب جا فیل میاد بعدش اون جا حمل فعل آمدن 90 درصد اسم آمدن ده درصد و میگن هم کردن به اهم و اغلب خوبه است انسان اهم عمومیت دار و اغلب غالبتر رو تو کلام خودش به یه به نزا ازیدن زربته ازیدن زربته و میگیم این زربته تفسیر میکنه چی رو؟ یک ضرب تای مقدری رو بعد از حمزه با اون موقع بعد از حمزه چی واقع شده؟ فه. از ایدن ضرب. این یک مورد. یا اگر منصوب بخونی حمله جمله فعلیه، عطف جمله فعلیه به فعلیه اگر مرفوب بخونیم عطف جمله اسمیه به فعلیه میشه. اگر منصوب بخونیم چی میشه؟ عطف جمله فعلیه به فعلیه. اگر مرفوع بخونیم عطف جمله اسمیه به فعلیه. پس معلوم میشه قبل از اسم مقدم ما یه دونه جمله فعلیه هست. آه. حالا عطف جمله فعلیه به فعلیه 90 درصد صورت عدو جمله اسمیه به فعلیه در سر خب بهتره که چی بشه آه. مگن تشاکلل جملتن تشاکلل جملتن المتعاطفتن تشاکلل جملتن متعاطفتن اولا من تخالفه ما. اولا من تخالف ایمان یعنی چی؟ یعنی همشکل بودن دو تا جمله که به هم عطف میشن از جهت اسمیت و فعیلیت اولاست از چی؟ تخالف شون خب ما حمله به اولا بکنیم چیه؟ لذا میگه چی؟ میگه او حسله مورد دو یا حاصل شود به نسبهی با نصب دادن اسم مقدم حاصل شود تناسوب جمعه تناسوب دوتا جمله فلعت در عد تناسوب بیاد نگاه کنید الان قام زیدون این جمله چیه؟ جمله فعلیه است قام زیدون و امرن اکرم تو موقعه بگه زید قیام کرد من هم رو اکرام کرد و امرن اکرم حالا اگر من بگم و امرن اکرم تا او اون جمله و امرن میشه جمله چی؟ فریه. چون بعد از واو یک اکرم مقدر امرن رو چیکارش کرده نصبش ها ولی اگر خوندم امرون امرون میشه مبتدا و اکرم توه میشه خبرش این جمله چی میشه اسمیه میشه اعط میشه به جای جمله فعلیه پس در نصب خواندن چی هست تناسبی وجود دارد که در رفع خواندن نیست همین مناسبت و تناسب اولا کرده است نصب خوندن رو نسبت به قام زیدن و عمرن اکر. این مورد دو حالا نگاه کنید مورد سر او کانل المشتقل فعل طلبه یا عاملی که مشغول شده فعل باشه؟ طلبی باشه مثل فعل عمر مثل فعل فعل طلبی باشه نه و ازربو زیدان ازرب, ازرب الان اگر من زیدن بخوانم گونه اشکالی نیست چون ازربی که مذکوره است یک ازرب مقدری رو چکار میکنه؟ تفسیرش میکنه یک ازرب مقدری رو تفسیرش میکنه و اون زیدن منصوب میشه به یک ازرب مقدری اما اگر مرفو خوندم زیدون میشه مبتدا. از میشه چی؟ جمله فعل و فاعل و مفعول خبرش جمله انشائی بعضی قائلا خبر واقع نمیشود. مگر اینکه مقول قول تقدیر شود مگر اینکه مقول قول قدیل شود یعنی باید یه دونه مقولون یوغالو اونجا شکای کرد تقدیر گرفت مثلا بشه زیدون یوغالو فیه ازره بود گفته می شود در مورد او اذرب. بود و بعض دیگر قائلند که واقع می شود جمعه انشایی خبر جمعه انشایی خبر واقع می شود اما یکی دو درست سه درست یکی دو درصد سه درصد سلام داریم حال چه بگیم یکی دو درصد واقع میشه شود چه بگیم نیازه به تقدیر داریم تقدیر ماده قول تا مقبول قول بشه در هر دوتاش چیه است اونی که یکی دو درصد میگه واقع میشه که خیلی کن است خب انسان حملش بکنه به جایی که قالب از تو بیشتر و اهم بهتر اونی که میگه چی؟ نیازه به تقدیر داره اصل چیه؟ عدم تقدیره اصل اینه که چیزی تو کلام تقدیر گرفته نشه پس در رفت خوندن مشکلی هست که در نزد خوندن وجود ندارد لذا در اینجا چی خوبه؟ منصوب بخوانیم که این همه مشکلات رو نکشیم. نه حرفو بخوانیم تا این همه بدبختی سرابه خب این هم مورد چندو سوم که نصبش بهتره حالا مورد چهارم که مثال میزنه میگه يتساو ول عمران يتساو یعنی چی یعنی متساوی است برابر است هر دو هم هر دو هم کلمه رفت خواندن یا نصد کندن نصد بخونید خوبه پنجال درصد میان رفع هم بخونید خوبه پنجال ارصد میان هیچ کدوم برای یکی ترجیح نداره حالا نگاه کنیم که موردش ازالم تفوت تفوتو بوده ها فاتح و فوت شدن ازالم تفوت المناسبت و فقعت علت تقدیره زمانی که فوت نشود از بین نرود مناسبت در ادغ کردن دو تا جمله بنابر دو تقدیر دو فص این کجاست یه جمله قبل اومده یه جمله قبل اومده از یک جهت بهش نگاه کنیم جمله جمله چیه اسمی است از یک جهت دیگه بهش نگاه کنیم جمله جمله فعلی است حالا اگر ما مرفوع بخونیم عطفش میکنیم به چی؟ جمله اسمیه قبل. اگر منصوب بخونیم عطفش میکنیم به جمله فعلیه قبل. اون جمله قبل بهش میگن ذات و وجهین. ذات و وجهین یعنی چی؟ درو. درو دارد یه روش اسمیه است، یه روش فعلیه است. مرفوع بخونیم عطف میشه به روی اسمش. منصوب بخونیم عطف میشه به روی فعل. نگاه کنید تا زیدون قامه زیدون مبتدا قامه فاعل خبرش الان اگه کل زیدون قامه رو در نظر بگیری جمله جمله چیه اسمی است ولی خود قامه رو که خبره در نظر بگیری جمله میشه جمله میشه جمله حالا اگر ما بعدش خوندیم امرن اکرم تول امرن اکرم دول. باید عطفش کنیم به جای چی؟ به جای قامن. عطفش کنیم به جای آه. میگیم امرم منصوب است به یک اکرم توی مقدر که این اکرم تو تعبیرش میکنه. بعد اکرم تو امرم جمله فعلیه عطف به جای قامن. که البته در این صورت یه مثلا فیدارهی اونها رو هم بزنید به زی بعد از این امرن اکرام توو میری بسن آدم های دقیق در نه چرا؟ به دلیل اینکه اگر امرن اکرم توه عطف بشه به جای قامه ما گفتیم که معتوف در حکمه معتوف و نلعیه. قامه چه نقشی داشت؟ خبر بود امرن اکرم تو هم اون موقع بشه چی؟ خبر بود و اگه خبر بشه باید یه زمیری داشته باشه برگرده به زید دیگه یه فیدارهی تقدیر میگیرن که اون بشه برگرده به زید و رابط بشه از جنبه خبر به یعنی اینطور بشه زید ایستاد و رو اکرام کردم در خانه زید خب اگر امرن خوندیم منصوب میشه بگی اکرم توی مقدر و میشه به جای جمله قامل اون موقع این جمله چه محلی از اعراب داره جمله اکرم تو امران جمله قامه مرفوع است خبر اینم میشه مرفوع خبر دیگه اینو چی دیگه در خب اما اگر امرون خوندیم امرم میشه مبتدا تدا اکرم میشه چی خبرش این جمله اسمیه عط میشه به جای جمله اسمیه قبل جمله اسمیه قبل چه محلی از اراب داشت هیچ جمعه ابتدایی هیچ محلی اراب نداشت این جمله هم اون موقع محل از هیچ محلی پس اگر امراندو منصوب خوندیم جمله میشه جمله فعلیه عط میشه به جای خبر و هرچی که به جای خبر بیاد باید مثل خبر دارای رابط باشه یه فیدارهی هم تدمیر داره میکره. و اون موقع جمله اکرمت و امرن فیدارهی که عطب شده به جای قامت خبر مقصود میشه و محلن, محلن. چون در حکم معتوفه و اگر امرن خوندیم امر میشه مبتدا اکرم توه خبر این جمله اسمیه عطف به جای زیدان قامه یه جمله اسمیه دیگر چون جمله اسمیه زیدان قامه محل اعراب نداشت پس امرون اکرم توه محل نداره چون در حکم حالا نگاه کنی خودش توزیح فعن رفعت ها. اگر رفت دادی امرو فعل علل اسمیت الاسميه میشه بر جمله اسمیه یعنی جمله کبرا بهش میگن جمله کبرا یعنی جمله اسمیه اعطف میشه بر جمله اسم او نصب تا و اگه نسب دادی درست شو اعطف میشه بر چی؟ فعلا فعلیه اعطف میشه به جمله فعلیه که بهش میگن جمله صغرا و اون موقع نیازه به یک رابطه به سوی مبتدا هم داریم که مفتید فیدارهی رو تبدیل تمام شد این هم مال مورد متصامی حالا موردی چی باقی میمونه؟ جایی که رفعش بهترست از نسبهش نگاه کنید و یه ترجق و رفع و فیما عدازاله کرد چهار جا رو شما خود دید در غیر این چهار جا هر جای ای که پیدا بشه بهتر است که چی منصوب خود بشه چی منصوب خود بشه و یترجح الرف ما ادا سالکند اربع در غیر از این چهار جا چرا لا عدم التقدی زیرا اولویت دارن عدم تقدیر اگه مرخوب بخونیم میشه مبتدار جمله برد خبر دیگه چیزی تقدیر نمیگیریم ولی اگه منصوب بخونیم مجبوریم یه فعل مقدری رو چکار کنیم تقدیر بگیریم و اصل عدم تقدیر نه با مثال زیدون زربتوه زیدون زربتوه هلان زیدون مبتدار زربتوه فعل و فایل و مفهول خبره آیا نمیشه زیدن خوند؟ چرا؟ زیدن هم جایز از تو اما خوب نیست چرا خوب نیست؟ به دلیل اینکه اگر زیدن بخوانی مجبوری یه ضرب کار کنی؟ تقدیر بگیری و اصلی که تقدیر چیزی انسان تا میتونه نکیده اصل عدم او اولویت دارد عدم تقدیری این هم موردی که رفتش بید. پس بنابراین باب اشتغال رو ما خوندیم تعریفش رو شما دیدید و پنج موزه اش رو هم خوندیم که یادتون باشه تو کتاب هدایه گفتش که درش چی هست تفاصیلی وجود داره ها که گفتش این تفاصيل در کتب دیگه خونده میشه که اینجا ما داریم می تفاصيلش چی بود بعضی جاها واجب الرفع بعضی جاها واجب نسبه بعضی جاها مستحب بس رفعش بعضی جا مستحب بس نصبش و بعضی جاها هم است یعنی میتونه معقوله منصوب بکنید. در واقع مباهه دفعه است. این موارد رو یکی دو مرتبه که بخانید و به عبارات گوش کنید و چی که نوشتید رو نگاه کنید. بسیار ساده است و حفظش کنید چون نیازش هم دارید توی قرآن هم چندین جا مستعمید بسیده و سلم الله حالا جلسته 19 هم